و خب بسم الله الرحمن الرحیم درس نوزه هم قسمت سومش قسمت سوم و یعنی هم مبتدا و هم خبر پس فاعل و داد درس نوزه نائب فاعل و داد الان مبتدا رو توضیح میده و خبر را که میشه و 4 و الثالث مرفوع سوم و چهارم کل ترکیب مثلو هر ترکیبی ماننده البستانو مصبرون بستان ثمر داده است و یسمأ الاسم الاول مبتدا اسم اولی مبتدا نامیده میشه و ثانی خبرا و دومی خبر پس مبتدا و خبر دو تا اسم هستند ای که با اسم شروع میشه جمله فعلیه داستانش متفاوت است مانند بستان و مثمرون بستان مثمر است و امثله بسیاری هندی که در ایضاح می آورد این کتاب خوبیش می ناست بستان البستانو مبتدا مرفوع علامه رفع ظمه مثمرون خبر مرفوع علامه رفع ظمه الجمل الجمله المفیده اما جمله مفید یا اینکه ان تن من فعل و اسم یا اینکه بس میشه درست میشه از اسم از فعل و اسم و هو الفاعل او نائب اون اسمی که بعد از فعل میاد یا فاعل اگر فیلم معلوم باشه او نائبه يا نائب او یا نائب فاعل زمانی که فیلم مجهول باشه قد تقدم الكلام علیهما و الكلام در رابطه با فائل و نائب فاعل قبلا رد شد و اما و یا اینکه که جمله مفید ان من اسم. درست بشه منعقد بشه از دو اسم فیسمى الاول مبتدا اولی مبتدانا اول میده میشه و ثانی خبر و دومی خبر نامیده میشه واجب فیهما عرف و واجب است درد. مبتدا و خبر رفعه واجبست مرفوع باشند مثال و ذلك مثال آن البستان و مصمرون بستان از این جمله از دو اسم منعقد شده پس جمله اسمیه هست البستانو میشه مبتدا مصمرون میشه خبرش البستانو مبتدا جز مرفوعات ترکیب مبتدا یا منصوب یا مجرور مرفوعه دیگه در بحث مرفوعات هستیم مبتدا دیگه جز مرفواتی پس البستانو مبتدا مرفو علامه طرف زمی مطمین خبر مرفو علامه طرف زمی و الشجر و مورقن مبتدا مرفو علامه طرف زمی مورقن خبر مرفو علامه طرف زمی و المطرو غزیرون المطرو مبتدا مرفو علامه طرف زمی غزیرون. خبر مرفوع علامت رفزن بید والجو موتدرون الجو مبتده خبر هردوتا تا بازن بید و ما اشبه ذلك من كل جمله ترکبت من اسمینی و تودیا به احده عنه بالاخر و شبیه همین است هر جمله دیگی که از دو از ترکیب شده باشه که با یکی از اونا شروع شده باشه و اسم دیگر در مورد اسم قبلی خبر داده باشه خیلی قشنگه چه زمانی مبتدا و خبر است زمانی که جمله با دوتا اسم شروع شده باشه زمانی که جمله با یک اسم شروع شده باشه و با اسم دیگر در مورد اسم اول خبر داده بشه باغ سمردار است درخت پربرگ است باران خیلی تند و زیاد است جو معتدل است زیدون عالمون زید عالم است المعلمو عاقل معلم عاقل است البیتو واسع خانه وسیع است هر چیزی دیگه که با یک اسم شروع شده باشه و با اسم دیگی در مورد اسم اولی خبر داده شده باشه اون موقع ترکیبش مثل همین ترکیب است یعنی اولی مبتدا و دیگری خبر پس مبتدا و خبر وحشون ساده بود درس 19 قسمت پنجم که اسم کانه اسم کانه هم جزء مرفوعات است خودش در توضیح اینو دیگه از بس واضح میگه تکرار نمی کنیم والخامس مرفوع پنجم کل ترکیب مثلو هر ترکیبی ماننده کل ترکیب مثلو کان البستانو مصمرن بستان مصمر است سمردار است بستان سمردار بود خوب اینجا البستانو مصمرون اگر کانه رو برداری میشه البستانو مصمرون همون مثال های و خبر رو اینجا آورده فقط یک کانه روشون آورده چرا؟ چون کانه و اخواتش فعل های ناقص یعنی روی مبتدا و خبر ها میاند و اون موقع دیگه نمیگیم مبتدا و خبر بلکه به مبتدا که قبلا مبتدا بوده الان میگیم اسم کانه و به خبر میگیم خبر کانه پس هر ترکیبی مانند ترکیب کان البستان و مصمرن و یکون البستان و مصمرن فعل چه باشه چه مزاره باشه چه امر باشه فرقی نمی کنه کانه و اخواتش این خاصیت رو دارن کان البستان مصدرا ترکیبش اینه کان میگیم فعل ناقصه البستانو اسم کانه مرفوع علامت رفع زمه مفردن خبرش منصوب علامت نصبش فتحه یکون البستانو مصدرا البستانو اسم کانه یکونو که مزاره کانه هست البستانو اسم کانه مرفوع علامت رفع زمه مفردن خبرش و اسم اولو اسم کانه اسم اولی نامیده میشه اسم کانه و مثل کانه و مانند کانه هست ساره اصبحه ابها و لا امسا باته مازال ما بریها منفکه ما فتی اما دامو کانه رو هم یعنی ما کانه اسم و خبر داره اینایی که نام بردیم اسم و خبر داره و اسمشون جزو مرفوعات هست پس پنجمین ترکیبی که ما خوندیم و جزو مرفوعاته اسم کانه و این اخواتی بودن که اینجا نام بردیم إيض توزي. المبتدا والخبر مرفوعان كما علمنا. مبتدا وخبر مرفوعا سهمن توك دارسين. فإذا دخلت عليهم كان زمانك دخل بشه بر مبتدا وخبر كان يسمى المبتدا اسم, اسم كان كانه. مبتدا اسمه كانه نامي دمشي. ويسمى الخبر خبرا لها. وخبر خبر كان نامي دمشي. ويجب في الأول الراف وفي الثاني النصف. و واجب است که اولی که قبلا مبتدا بود و الان اسم کانه مرفوع بشه و دومی که قبلا خبر مطلق بود که الان اسمش از خبر کانه واجب است که چی بشه منصوب بشه مانند کان البستان موسرن کان الشجر مورقان کان المطر غزیران کان الجو معتدلا فتقول في الأمثلة السابقة در مثال هاي قبلي كدر بحسة مبتدا خبر خان دي كان البفتان مطمرا كان الشجر مورقا كان المطر غريزا غزيرا كان الجو معتدلا وعلى هذا القياس ومثل كان صارح وما ذكر بعدها من العفاة ومعنان ده كان مباشد صارة وفي لهاي ديجيك بعدش ذكر شدن ده الآن ذكر شون تابدين نحو مانان ده صار البستان مثمرا اصبح الشجر مورقا مازال الجو معتدلا و حلوم مجرن و اینچنین تا آخر. پس کانه صاره اصبح ابحا الله امسا باتا مازال ما برهم منفک ما فتئا مادامه وليسا اینا عملشون یک، عمل تمام اینا یکه اسمشون مرفوع و خبرشون منصوب و ششومین مرفو ششومین جایگاهی که اگر کلمه ای در اون جایگاه قرار گرفت مرفو هست اس خبر ان هست اسم کانه جز مرفو بود خبر اینا اینا چه است؟ دیگه توضیح میده و سادس و شیشمین مرفو کلو ترکیب مثلو ان البستانه مصورون هر ترکیبی ماننده ان البستانه مصورون اینا میگیم حرف مشبهه بالفعل البستانه اسمش اسش جز منصوباته که در بحث صبت دوباره میخواهد اومد مصمرون خبرش هست. پس ان موقعی که روی مبتدا و خبر بیاد مبتدار میگند اسم ان نه خبر رو میگند خبر ان نه و خبر ان ترکیبی که جزو مرفاته. و اسم الاول، اسم الاول اسمن ل نه اسم اولو میگند یعنی مبتدار رو اسم ان نه دیگه الان بهش نمیگن مبتدا و به دومی میگند خبر ان که خبر ان نه جزو مرواته. ومثل انا انا كا انا لكن لا يتا لعله لا معنان ده انا ميباشند اناو كا اناو لكن لا يتا لعله لا انا هم مثله انا ميباشند يعني روی مبتده و خبر مياند اول رو مياند اسمشون و دوهم رو مياند خبرشون كدوهمی جایگاهش مرفوه ايضاح علمنا انهو اذا دخل للمبتده و الخبر کانه او فعل من ما ذوك رمعه دانستیم زمانی که وارث شود بر مبتدا و خبر کانه او فعل من مادو که یا اون افعالی که اخوات کانه بودن و با کانه زکشون مثل اصبح و ساره و ذله یکون الاول مرفوعا والثانی و در کانه اسم اول مرفوع بود و, و اسم دوم منصوب در کانه و اخواتش اسم اول که مبتدا بود مرفوع بود و دومی منصوب اینجا برعکس وعلم میگه بدان انه اذا دخل علیهما ما زمانی که داخل شد بر مبتدا و خبر اینه اینه اینجا نقشش فائل هست زمانی که داخل شد دو چه چیزی داخل شد اینه پس اینه فائل هست یکون الاول منصوبا اولی منصوب هست اولی منصوب میباشد و الثانی مرفوعا و شود مرفوع میشود بر عکس کانه و اخواتش مال اینه و اخواتش اولی منصوب دومی دو مرفو در کان اولی مرفو بود دومی دو منصوب بود و یسام و ايضا اسما لانه اولی نامیده میشه اسم ان و ثانی خبر لها و دومی خبر ان نامیده میشه فتقول في الامثله السابقه نفسها در مثالهای قبلی خودشون میگویی ان البستانه مصمیرون ببینید اگر بگیم البستان و مسمران ترکیبش میشه البستان و مبتدا مرفول علامت رف زمی مسمران خبر مرفوع علامت رف زمی اگر بگیم کان البستان و مسمران میگیم کان فعل راقصه البستان اونو اسم کان مرفوع با زمی مسمران خبر کان منصوب بافتی این البستان مسمران میگیم ان نه حرف مشابه البستان اسم منصوب علامت نسبتی مسمران خبرش مرفو با زمی پس در این درس آیا اسم ان جز مرف یا خبرش میگیم خبرش خودش گفته نوزه قسمت شیشم یا مرفوع خبر ان است و ان الشجره مورق و ان المطر غزير و ان الجو معتدل که همیشون تاکیدشون یکی است و مثل ان و مانند ان میباشد ماذکر من الحروف حروف دیگی که بعد از ان زیک یعنی الا النولا کنولا تولا و نحوه مانند علم تو ان البستان مثور کأن الشجرة مورق كأن الشجر مرأ تشبیهه گویا که درخت ولاکن المطر غزير لاکن متر شدید است ولیت الجو معتدل کاش جو معتدل وعلی هذا القیاس برین منوال و قیاس پس مرفوعات تمام شدند چندتا بودند فائل نائب فائل مبتدا خبر اسم كانة و خبر عنه اینا شش تا جایگاه بودند که اگر کلمه ای یکی از این نقش‌ها رو گرفت، یکی از این ترکیب ها رو گرفت، در یکی از این شیش جا قرار گرفت، مرفومی باشه که بهش زمه بدیم. و اگر از اون کلماتی بود که اعراب فرعی داشت و در بحث خودش گفتیم، اون موقع همون علامت که اونجا مشخص شد، اون رو بهش بدیم. موفق و پیروز باشید.